درخت نشین اثر ایتالو کالوینو ترجمه مهدی صحابی صدای آرمان سلطانزاده تهیه کننده دامون آزری کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری محسسه انتشارات نگاه فصل اول 15 جوانه 1767 آخرین روزی بود که برادرم کزیم و دوروندو با ما گذارند. این روز را چنان به یاد دارم که انگار روز بود در نهار خوری خانه ایمان در امبروزا نشسته بودیم شاخه های پر برگ بزرگ باغ از پنجره دیده می نیمروز نیم روز بود خانواده ما به رسم قدیمی همیشه در این ساعت نهار میخورد نهار بعد از ظهر شیوهی که درباره ولنگار فرانسه باب کرده بود و همه اشراف آن را پذیرفته بودند در خانه ما جایی نداشت یاد دارم که باد میوزید و برکاتکان میخورد بادی بود که از دریا میامد کوزیمو بشقا به را به کناری زد و گفت پیش از این گفته بودم و باز هم میگویم که هلزون از نمیخورم حرکتی این چونین خیر سرانه در خانه ما سابقه نداشت. پدرمان بارون باران آرمینیوس لاورس دوروندو بالای میز نشسته بود. کلاه گیسی به سبک لوی چهاردهم به سر داشت که تا گوشهایش می رسید و مانند همه چیز او کهنه و منسوخ بود. پدر فوش لافلور کشیش خانواده و آموزگار ما میان من و برادرم نشسته بود. روبروی ما، مادرمان ژنرال کنرادین دولاورس و خواهرمان باتیستا راهبهی خانواده نشسته بودند. پایین میز جناب وکیل اناس سیلویوس کارگاجا داشت که کارشناس آبیاری سرپرست املاک ما و برادر ناتنی پدرم بود و لباس ترکی به تن می‌کرد. کوزیمو دوازده سال داشت و من هشت ساله بودم. تازه چند ماهی می‌شد که اجازه یافته بودیم با پدر و مادرمان بر سر یک میز غذا بخوریم. من هم با آنکه سنم کافی نبود از این امتیاز ویژه برادرم برخوردار شده بودم. زیرا دلشان نمی آمد که من تنها قضا بخورم. گفتم امتیاز؟ بدین گونه برای کوزیمو و من دوران خوشی به سر رسیده بود و دلمان من هوای نهارهای ساده ای را داشت که همراه با فوشلافلور در اتاقی کوچک و دور افتاده می خوردیم. کشیش پیرمردی کوچک اندام و لاغر بود و چهره ای پر چروک داشت. میگفتند ژانسه نیست است. به همین خاطر از دادگاه خود در دوفینه گریخته بود تا گرفتار محکمه انکیزیسیون نشود. اما روحیه پرصلابتی که به او نسبت داده میشد و نیز پارسایی و جدیتی که او بر خود و دیگران تحمیل میکرد پیوسته جای خود را به سستی و تزلزل میداد. زیرا سرشتش به بی و وارفتگی گرایش داشت. زمانهای درازی که او به درون خلأ خیره میشد و به فکر فرو می رفت، به ظاهر تنها این فایده را داشت که او را بسیار تنبل و بی‌اراده و اندکی افسرده کرده بود. پنداری کوچکترین دشواری‌ها را هم نشانی از قضا و قدری می‌دانست که در افتادن به آن بیهوده بود. پیش از هر خوراکی که با او می‌خوردیم، زمان درازی دعا می‌کرد. حرکت قاشق‌هایمان باید برازنده، بی‌صدا و با تو معنی نمی بود. وای بر ما اگر سرمان را رو از روی بشقاب بلند می کردیم یا هنگام فرو بردن سوپ کوچکترین صدایی از خود بیرون میدادیم. اما با پایان گرفتن سوپ کشیش کم کم خسته و دل زده میشد، نگاهش را به درون خلق می دوخت و با هر جرعی شراب لبان خود را به صدا در میآورد. چون این می نمود که تنها احساسهای آنی و گذرامی تواند هنوز بر او اثری بگذارد. به خوراک اصلی که می رسیدیم دیگر می توانستیم با دست بخوریم و در پایان غذا ته گلابی را به سوی یک دیگر پرتاب می کردیم و کشیش شیش گهگا با لحن ای می گفت "آها، چی کار می کنید؟ از هنگامی که بر سر میز همگانی می نشستیم حس می کردیم که همه ی فشارهای خانواده بر ما وارد می شود و این قمنگیز ترین دوره کودکی ما بود پدر و مادرمان لحظی چشم از ما بر نمی داشتند. مرغ را با کارد و چنگال بخور، راست بنشین، آرنج هایت را از روی میز بردار پایانی نداشت. از همه بدتر خواهرمان باتیستا بود که شکنجه ایمان میداد. هرچه بود سرکوفت و خودخواهی و سرزنش و ترش روی بود. تا اینکه کازیمو از خوردن هل ازون اون سر بازد و بران شد که راه خودش را از ما جدا کند. بعدها بهتر فهمیدم که مفهوم آن همه بغز و کینه یه شده چه بود. اما در آن زمان تنها هشت سال داشتم. همه چیز به نظرم بازی می رسید. درگیری ما با بزرگترها را همه کودکان دیگر نیز داشتند. در آن زمان نمی فهمیدم که خیرسری برادرم انگیزه بس جرفتری دارد. پدر ما گرچه مرد بجنسی نبود، شخصیتی ملال انگیز داشت. زندگیش یک پارچه پیراهف فکرها و های کهنه و متروک بود و این همان چیزی است که اغلب در های انتقالی دیده می شود جوش و خروش زمانه این نیاز را در برخی کسان پدید میآورد که به جنبش درآیند اما جنبشی در خلاف جهت و در بیرون از راه درست از این رو در گرماگرم تب و تابی که در پیرامونمان جریان داشت پدر ما به این می نازید که حق داشتن عنوان دوک امروزا از آن اوست و تنها و تنها در فکر مسائل مربوط به اصل و نسب و جانشینی و رقابت با این و آن و نیز اتحاد با های دور و نزدیک بود. زندگی در خانه ما هم همواره حالتی داشت که انگار برای شرکت در میهمانی دربار تمرین می کردیم. کدام دربار؟ درست نمیدانم دربار امپراتریس اتریش یا شاهلویی یا دربار تورینا؟ اگر مثلا خوراک بوغالمون داشتیم پدر زیرچشمی ما را میپایید تا ببیند که آیا گوشت بوغلمون را به شیوه درباری میباری ما میخوریم یا نه کشیش که در سرزنش ما باید همیشه طرف پدرمان را میگرفت بفهمی نفهمی اندکی از گوشت بوغلمون را میخورد از ترس اینکه مبادا کار خودش را خراب کند اما جناب وکیل کارگاه، با تردستی تکیه بزرگی از ران پرنده را لای چین‌های قبای ترکی خود پنهان می‌کرد تا بعد به باغ برود و در پناه تاک ها آن را با خیال راحت گاز می‌زند و ما به این شگرد او پی برده بودیم گرچه به خاطر چابکی‌اش هرگز او را سر بزنگاه زنگاه نکردیم ولی مطمئن بودیم که با جیب‌های پر از های پاک شده سرمیز میز می‌نشیند تا آنها را به جای استخان‌های ران روبوده شده در بشغاب بگذارد مادرمان، جنرال، ای نداشت زیرا سر میز غذا هم رفتارش خشک و سپاهیانه بود. به زبان آلمانی می گفت، خب، یک کم دیگر، خیلی خوب و هیچ کس اعتراضی به او نمی کرد. شاید بتوان گفت که آنچه او از ما انتظار داشت، نه چندان ظرافت و برازندگی که و انضباط بود. او هم در همکاری با پدرمان خطاب به ما دستورهای نظامی صادر می کرد. آرام باش، پوزت را پاک کن تنها کسی که هیچ مشکلی نداشت خواهرمان با راهبه تا خانه بود. با دقت و پشت کار یک جراح گوشت را ریز ریز می کرد و در این کار از کارت‌های کوچکی بهره می گرفت که تنها خودش داشت. کارت‌هایی که به راستی همانند تیغ جراحی بود. با آنکه پدرمان می او را به عنوان نمونه به رخ ما بکشد جرأت نمی کرد حتی نگاهی به او بیاندازد. چشمان جنی خواهرمان که از زیر سربند آهار زده میدرخشید، می به هم چفت شده و چهره زرد موش مانندش حتی پدرمان را هم می گفتنی است که همه یکینه ها، اختلاف ها، خلی ها و دروی های ما بر سر میز قضا خود می‌نمایانید. شورش کزیمو هم از سر میز قضا آغاز شد. بنابراین مرا میبخشید اگر در این بار پرگویی می‌کنم. شکین نیست که از این پس در زندگی برادرم میز جایی نخواهد داشت میز غذا تنها جایی بود که ما با بزرگترها هم نشین بودیم بقیه ی روز را مادرمان در اتاقهای های خودش میگذراند گلدوزی میکرد و توری می بافت. تنها کاری که ژنرال به آن می همین سرگرمی های سنتی زنانه بود اما در همین کار هم به قریح نظامی خود میدان میداد گیپور و توری هایی که می بافت به های جغرافیایی آراسته ها بود. نیز نقشه هایی را به صورت پرده یا روبالشی می بافت سپس سوزن های یا پرچم های کوچکی را در آنها فرو میکرد کرد که نماینده میدان های نبرد جنگ رقابت بر سر تاج و تخت اتریش بود. جنگی که او جزئیاتش را از حفظ میدانست. گاهی دیگر اراده های تو پیرا گلدوزی میکرد که گلوله‌های آن با زاویه‌های گوناگون و در جهت های مختلف پرتاب شده بود. مادرمان آشنایی ژرفی به فن بالستیک یا دانش پرتاب داشت. دختر ژنرال کنراد فون کورتویتز بود که 20 سال پیش در فرماندهی نیروهای ماری ترزا اتریش را داشت که زمین‌های ما را اشغال کردند. از آنجا که مادر کنرادین مرده بود، ژنرال در لشکرکشی‌هایش او را همراه خود می‌برد. اما این قضیه هیچ جنبه قهرمانانه نداشت. هر با بهترین وسیله ها سفر می کردند در زیباترین کاخ ها و قلعه ها جا می گرفتند فوجی از خدمتکار همراه داشتند و دختر ژنرال همه روز خود را به توری بافی می گذراند می گفتند که او نیز بر اسب در نبردها ها شرکت می کرده است اما این افسانه ای بیش نبود تا آنجا که ما به یاد داشتیم همواره همان حالت زنی کوچک اندام با بینی ظریف و صورتی رنگ را داشت و شاید تنها به این دلیل قریهه سپاهیانه پدرش را حفظ کرده بود که به طوانت با شوهر خود مقابله کند. پدر ما از جمله تک و توک اشراف محلی بود که در آن جنگ طرف نیروهای امپراتوری را گرفتند. با آغوش باز نیروهای ژنرال فون کورتویتس را در تویول خود پذیرا شد و همه زیر دستانش را در اختیار ژنرال گذاشت. حتی برای نشان دادن وفاداری خود به امپراتوری، کنرادین را به زنی گرفت. البته، مانند همیشه، همه این کارها را به این امید کرد که روزی دوک شود. اما آن بار نیز کار خراب شد. نیروهای امپراتوری به زودی پس نشستند. ها با تحمیل خراج تازه پشت پدر را شکستند. با این همه، از این معامله همسر بسیار خوبی نصیب پدرم شد. که پس از مرگ افتخار آمیز پدرش در پروانس و پس از آنکه ملکه ماری گردنبند گردنبند طلایی را روی یک بالشتک مخملی برای او فرستاد ژنرال لقب گرفت. رابطه زن و شوهر تقریبا همیشه خوب بود گرچه مادرمان که در میدانهای نبرد بزرگ شده بود و جز به جنگ و سپاه نمیاندیشید. به پدرمان خورده می گرفت که دستیس باز ناموفقی و نیست. میتوان گفت که هر دوی آنها هنوز در همان زمان جنگ جانشینی میزیستند مادرمان با خیال توپخانه هایش و پدرمان با اندیشه شجر نامش. آرزوی مادرمان این بود که ما در ارتشی هر ارتشی که باشد افسر شویم امید پدرمان این بود که روزی با شاهزاده خانومی از خاندان امپراتوری عروسی کنیم در عمل پدر و مادر بسیار خوبی بودند اما تا آن اندازه به ما بی توجه بودند که ما تقریبا به هوای خودمان بزرگ شدیم این بد بود یا خوب بود کسی چه می درست است که زندگی کزیم مانند دیگران نبود. اما من زندگی ساده و بسامانی داشتم. در حالی که هر دومان دوره کودکی همانندی را گذراندیم، هر دو با هم بی اعتناب دشواری‌های های بزرگتر و آنچه مردمان می‌کردند، بزرگ می شدیم. از درخت‌ها بالا می رفتیم. این نخستین بازی های کودکانه اکنون برای من به صورت نوعی زمین سازی برای آینده جلوه می کند. اما در آن زمان چه کسی به این چیزها فکر می کرد ؟ از سنگی به سنگی می پریدیم و بستر رودخانه ها را میپیم به درون غارهای کنار دریا سر می کشیدیم از روی نرده پلکان ها سر میخوردیم و پایین میرفتیم یکی از این سرسور بازی درگیری بسیار سختی را میان کازیمو و پدر و مادرمان به دنبال آورد و او که به گمان خودش به ناحق سرزنه شده بود از همان هنگام کنه خانواده را به درگر کینه خانواده یا جامعه یا همه جهان کینهی که بعدها در تصمیم روز پانزده ژوئن او خود نمایانید نگفته نماند که پیش از آن ما را از ساریدن روی لبه مرمری پلکان ها من کرده بودند نه به این خاطر که می ترسیدن و پاهایمان من بشکند پدر و مادر ما هیچگاه نگران چنین رویدادی نبودند و به همین دلیل هرگز نشد که دست و پایمان آسیبی ببیند نگرانیشان از این بود که تنه ما که هرچه بزرگتر و سنگین تر میشد، به مجسمه های نیاکانی بخورد که پدرمان روی ستون های کوچک لبی پلکان و پاگرد های آن کار گذاشته بود. و مجسمه ها بیفتد و بشکنند. پیش از آن هم کازیمو یک بار مجسمه یکی از اشدادمان را که اسقفی بود لغ کرده بود. و چون برای این کارش سرزنش می شد، یاد گرفت که پیش از رسیدن به پاگرد و خوردن به مجسمه ترمز کند و از لبه پلکان پایین بپرد. من هم این شیوه را فرا گرفتم. در هر کاری از او دنبال روی می کردم. اما از آنجا که همیشه محتادتر و سربزیرتر زیرتر از او بودم، در میانه راه از روی لبه پلکان پایین می آمدم. یا اینکه تکه تکه سر میخوردم و پیاپی ترمز می کردم. یک روز که کزیمو با شتاب تیر از پلکان پایین می کشیش فوشلافلور از پله ها بالا میرفت. کتاب دعایش را باز کرده بود و در دست داشت و چشمان خیره و بیاحساسش به چشمان مرقی میمانست. کاشمانند همیشه در حالت خواب و داری بود. اما نه. آن روز به هوش بود و به همه چیز پیرامون خود توجه داشت. کزیمو را دید. فکر کرد لبه پلگان. مجسمه. اگر کازیما به مجسمه بخورد، مرا سرزنش میکنند. هر بار که ما بازیگوشی میکردیم، او را سرزنش میکردند که چرا مراقب ما نبوده است. این بود که به سوی نرد خیز برداشت تا جلوی برادرم را بگیرد. کازیما به کشیش خورد که کوچک اندام و پوست و بود و او را تا پایین پله پرتاب کرد و چون نتوانست به هنگام ترمز کند، با شتابی دو برابر به مجسمه جدمان من، دورندوی خورد که از پهلوانان جنگ های صلیبی بود و به سرزمین مقدس رفته بود. کزیمو و کش و پهلوان صلیبی که از گچ بود هرص پای پلکان نقش زمین شدند و مجسمه ریز ریز شد. مجازاتهایی به خود دیدیم که پایانی نداشت. از شلاق و بیگاری گرفته تا زندان و کاستن جیره غذایی تا حد نان خشک و سوپ سرد. و از آنجا که کزیمو خود را بیگناه میدانست، زیرا تقصیر نه او که از کشیش بود، ناسزای بسیار تندی به زبان آورد و گفت پدر عزیز، اجداد شما رو فلان خودم هم حساب نمی کنم. گرایشش به خیره سریع از همان هنگام پیدا بود. خواهرمان هم در نهایت همانند ما بود. او نیز رویی سرکشو تک تکرو داشت و پرده نشینی او را پدرمان پس از قضیه مارکی دولا به او تحمیل کرده بود. آنچه را که میان خواهرمان و مارکی گذشته بود هرگز ندانستیم این مرد جوان که خانوادش با ما دشمنی داشت چگونه توانسته بود به خانه ما راه یابد دنبال چه میگشت؟ در بگو مگوی درازی که پس از ماجرا در گرفت گفته شد که هدف او این بود که خواهرمان را از راه بدر ببرد و بدتر از آن به او تجاوز کند اما ما هرگز نتوانستیم به خودمان بپذیرانیم که آن جوانک پیزوری جوش جوشی بتواند زنی و به ویژه خواهر ما را از راه بدر ببرد. باتیستا بسیار نیرومند او بود و شهرت داشت که در زورآزمایی با مهترهایمان توانسته بود بازویشان را خم کند. از این گذشته چگونه بود که در آن ماجرا جوانک فریاد زده بود و نه خواهرمان؟ چه شده بود که هنگامی که پدرمان و خدمتکاران خانه به دو خود را به محل حادثه رساندند جوانک را با لباس پاره پاره دیدند و شلوارش چنان حالتی داشت که انگار آن را به چنگال دریده است؟ خانواده دولپم هرگز نخواست به که مارکی قصد تجاوز به ناموس را داشته است و به عروسی آن دو تندر نداد. بدین گونه بود که خواهرمان خانه شد و لباس راهبگی به تنگ کرد. بیان که سوگند یاد کند زیرا انگیزش در پیوستن به سلک روحانی مشکوک بود. کینه او به ویژه در زمینه آشپزی خود مینمایند ظافت و نوآوری را که از مهمترین ویژگی های آشپز خوبه است دارا بود اما هر بار که خوراکی می پخت ما را به این فکر میانداخت که نکند باز چه نامنتظری را را برایمان تدارک دیده باشد یک بار برای ما کوفته جگر موش پخت که به راستی خوشمزه بود اما زمانی ماهیت آن را فاش کرد که کوفته را خورده و از آن ستایش کرده بودیم بار دیگر یک نان شیرینی آراسته به پاهای ملخ پخت. پاهای پشتی ملخ که سخت و آرماننده است. یکی دیگر از چیزهایی که برایمان پخت، شیرینی دوم خوک سرخ کرده بود. یک روز یک جوجه تیغی را با همه هایش پخت و سر میز آورد. خدا می‌داند در این کار چه انگیزه ای داشت. شاید می‌خواست شگفتی ما را هنگام برداشتن سرپوش ظرف جوجه تیغی تماشا کند و لذت ببرد. خودش هم که همه دست پخت های عجیبش را میخورد به آن خوراک لب نزد. در واقع مهمترین انگیزی او در آشپزی این بود که دیگران را تکان بدهد و نه اینکه خوراک‌های بدمزه‌ای را که میپخت به آنان بچشاند. خوراک هایی که تهیه می‌کرد نمودار ظریف‌ترین های هنر آشپزی نمایشی بود. مغز گل کلم را با دو گوش خرگوش می‌آراست و تکی از پوست خرگوش را به شکل یقه پایین آن می‌چسباند. سر خوکی را در بشقاب میگذاشت و میگوی را به صورتی در دهان او فرو میکرد که انگار خوک زبان سرخ خود را به نشانه لودگی بیرون آورده بود در همین حال چنگک های میگو به حالتی بود که انگار زبان خوک را از حلقومش بیرون کشیده بود خوراک حلزونش نیز گفتنی است نمیدانم چند حل از اون را سر بریده بود و هر کدام از آن سرهای نرم و کوچک را که به کلی اصبی میمانست با خلال دندان به کوفته چسبانده بود هنگامی که این خوراک را سر میز آوردند، چون می که لشکری از قوهای بسیار کوچک توی سینی سفارایی کرده است. فکر اینکه باتیستا با چه دقت و پشتکاری این خوراک ها را تدارک می‌دید و تجسم این که داستان ظریفش چگونه با آن جانورهای کوچک و رفت از منظره خود خوراک ها هم تکان دهنده تر بود. خواهر من در هنر شوم آشپزی خود از حلزون الهام می‌گرفت و بسیاری این موردها، من و برادرم را به تقیان وامی داشت انگیزه مادرین شورش دلسوزی برای آن جانوران زجر دیده انزجار از مزه آنها و خشم و ستیزه با همه چیز و همه کس بود از این رو طبیعی است که همین حرکت ما آغازگر شورش کزیمو و پیامدهای های آن بوده باشد نخشهی کشیدیم هر بار که جناب وکیل سبدی پر از هل خوراکی به خانه میآورد، آنها را در بشکهی در زیر زمین می‌گذاشتند، و چیزی جز سبوس به خردشان نمی‌دادند، تا اندرونشان پاک شود. با برداشتن در باشکه منظره شومی به چشم آمد. حل از اونها با حرکت بسیار کندی که از نزدیکی مرگشان خبر می‌داد، در لابلای شکاف های و میان پسمانده سبوس میلولیدند، و پیرامونشان آکنده از آب دهان و تکه های بود. سرگین رنگارنگی که یادگار دوران خوشی بود که در هوای آزاد و میان ها گذرانده بودند. برخی حل از اونها از لاک خود بیرون آمده بودند و سرشان کج و شاخک هایشان از هم باز بود. برخی دیگر در لاک خود کس کرده بودند و تنها شاخک هایشان دیده میشد. گروه های از آنها گرده هم جمع شده بودند و برخی دیگر به خواب رفته بودند یا لاکشان سر بالا افتاده بود و جان میدادند برای این که هل از اونها را از دستان آشپز تبعه کار و خودمان نیز مجبور به خوردن دستپخت او نشویم، ته بشکه را سوراخ کردیم. برگهایی از الف را به اصل آغشتیم و آنها را کنار هم چیدیم و از دم سوراخ ته بشکه به پشت بشکه های دیگر و وسایلی که در زیر زمین بود گذراندیم. قصدمان این بود که هل از اونها از بشکه بگریزند و از راهی که برایشان ساخته بودیم به دریچه کوچکی برسند و از آنجا به تکه زمینی پر از خس و خاشاک بروند. فردای آن روز به زیر زمین رفتیم تا نتیجه کارمان را ببینیم. در روشنایی شم دیوارها و دهلیزها را وارسی کردیم. یکی اینجاست. یکی دیگر آنجاست. ببینی یکی تا کجا رسیده. صف فشرده از حلزون از روی زمین و دیوار رو در طول راهی که ساخته بودیم به سوی دریچه می آهسته آهسته آهست پیش می رفتند و گهگاه راه خود را روی دیوار زبر کج می کردن تا سری به نقطه های نمناک و خزه گرفته و برآده بزنند با دیدن آنها می گفتفتیم به عجله کنید خودتان را نجات بدهید. امیدوار بودیم پیش از آنکه کسی بو ببرد همه یه حل از اونها بگریزند زیرا زیر زمین تاریک ها هم باشه از خرت و پرت بود و هر چیز نامنتظری می توانست در آن اتفاق افتد اما خواهرمان هر شب تفنگی به زیر بغل میزد و شمدانی به دست میگرفت و به شکار موش میرفت. آن شب در زیر زمین، روشنای شمعش روی حلزونی افتاد که به تاق چسبیده بود و خط نمناک نقری رنگی پشت سرش کشیده شده بود. صدای تیری شنیده شد. همه از خواب پریدیم. سپس بی‌اهمیت به آنچه می‌گذشت، سرمان را دوباره روی بالش گذاشتیم زیرا به شکار شبانه راهبه خودمان عادت داشتیم اما باتیستا پس از آنکه هل را با تیر کشت و تکی از گچ تاق زیر زمین را پایین ریخت، به جیغ زدن پرداخت. کمک! همهشان در رفتند. کمک! خدمتگاران نیمه برهنه پدر ما شمشیر به دست و کشیش بیکلاهلیس به سوی زیر زمین دویدند. اما جناب وکیل بیان که بداند چه خبر است، بهتر دید که خودش را به دردسر نیندازد. و از خانه بیرون زد و رفت و میان مزرعه‌ها روی تلی از که خوابید. در روشنایی چند مشعل، عملیات گسترده همگانی برای شکار هل از آغاز شد. هیچ کس در بند گردآوری هل از نبود. اما از آنجا که همه از خواب بیدار شده بودند، خودخواهیشان اجازه نمیداد که کاری نکرده به بستر برگردند. سوراخ ته بشک را کشف کردند و روشن شد کارکار کار کیست پدرمان. با شلاق مهتر به سراغ من آمد. ما را با پشت و ها و پاهای خط خط و کبود به اتاق کوچک شومی انداختند انداختن که زندان من بود. سه روز انجام ماندیم و خوراکمان نان، آب، سالاد، پوست خوک و سوپ سرد بود که خوشبختانه از آن خوش من می آمد. نخستین نهاری که دوباره با بقیه ی خانواده خوردیم در همان روز پانزده جوان بود. و از عادی می نمود. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود اما خواهرمان باتیستا سرپرست آشپسخانه چه تدارک دیده بود سوپ هلزون همراه با خوراک هلزون کزیما نخواست حتی لب به آن قصه ها بزند یا می خورید یا فوراً برمیگردید به زندانتان من وا دادم و به خوردن هلزون ها پرداختم با این کارم تا اندازه نامردی کردم برادرم تنها تر از پیش شد و یکی از انگیزه های رفتنش اعتراض به من بود که او را تنها گذاشته بودم. اما من هشت سال بیشتر نداشتم. وانگهی بیجاز اگر بخواهم نیروی اراده خودم را به ویژه در آن سن هشت سالگی با سرسختی غولاسایی که برادرم در همه زندگی از خود نشان داد مقایسه کنم. پدرمان رو به کازیما کرد و گفت خب؟ کازیما باشقاب را داد و گفت نه، نه، نه. برو بیرون. کوسیمو از بلند شد و از اتاق بیرون رفت. کجا میروی؟ برخت رختکن پشت در شیشه‌ای رفت و کلاهسه‌گوش و شمشیر کوچک خود را برداشت. فریاد زد: می‌دانم کجا بروم؟ و به سوی باغ دوید. لحظه‌ای بعد از پنجره دیدیم که از بلوط بالا می‌رود. سرو واس و برازنده ای را داشت که پدر ما میخواست سر میز غذا داشته باشیم موهای پودر زده که در پس سر بافته شده و به نواری آراسته بود کروات توری کت سبز کوتاه که پشت آن چین میخورد، شلوار تنگ و کوتاه و چسبان به رنگ بنفش شمشیر به کمر آویخته و پاتاوه های درازی از چرم سفید که به نیمه ران میرسید و تنها چیزی بود که از زندگی ما در محیط روستایی حکایت می‌کرد من که هشت سال بیشتر نداشتم در زندگی هر روزه و هنگامی که مراسم مهمی در کار نبود، از پودر زدن به موها و از بستن شمشیر معاف بودم. هرشنگ که خودم خیلی درم میخواست. کوزیمو با این ظاهر برازنده، با دقت و شتابی که نتیجه تمرین های طولانی من بود، دست خود را از لابلای شاخه ها و از تنه زبر و پرگری درخت بالا میره. پیشتر گفتم که عادت داشتیم ساعتهای درازی را بالای درختان بگذرانیم و این را مانند بسیاری از کودکان دیگر برای کندن میوه‌ها یا یافتن لانه پرندگان نمی‌کردیم بلکه انگیزه زمان لذتی بود که از دست یافتن به بلندترین و دشوارترین ها می بردیم و از هرچه بالاتر رفتن و جای خوبی پیدا کردن و نشستن و دنیای پایین را تماشا کردن و داد زدن بر سر کسانی که از پایین می‌گذشتند و لودگی کردن از این رو، به نظرم طبیعی آمد که نخست واکنش کازیمو در برابر زورگویی خانواده این باشد که از بلوت بالا برود. یعنی از همان درختی که به آن خوب گرفته بودیم. چند شاخه این درخت رو به روی پنجره نهار بود و کازیمو می توانست از آنجا خشم و اعتراض خودش را به همه ی خانواده نشان بدهد. مادرمان فریاد زد. احتیاط کن! احتیاط کن! الان می افتد بچه. شاید از دیدن ما زیر باران آتشبارهای دشمن کککش نمی‌گسید اما هر کدام از های معمولی ما او را نیمه جان می‌کرد کوزیمو خود را به شاخهای رساند که میشد به راحتی روی آن جا گرفت دستهایش را زیر رانهایش گذاشت و در بن شاخه نشست شانه ها را بالا آورده و کلاه را روی پیشانی کشیده بود و پاهایش در هوا تاب می خورد. پدر پدرمان سر از پنجره بیرون برد و داد زد وقتی که خوب خسته شدی تصمیمت عوض می شود کزیما از بالای درخت گفت دیگر هیچ وقت تصمیمم عوض نمی شود وقتی آمدی پایین نشانت می دهم باشد اما من دیگر پایین نمی آیم کزیما این را گفت و روی حرفش ایستاد.